دار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر بلک هوادارت چون بلدی بخندی و چشم دل ببازی با اش دل ببندی اجوا که دل به سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا نجوا که درب سبز پیشیده توی دنیا. از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم خوبین خوشین چه خبره؟ چه میکنی همه چی خوبه خبری نبوده رهبر چیزی نگفته همچنان برجام سریجاشه خب خدا رو شکر ما هم بد نیستیم دیگه آخرین روزیه که میخوایم باتون در مورد زیبایی حرف بزنیم و امروز میخوایم بریم سراغ چی؟ ای گفتی؟ ای گفتی؟ بگو بگو میخوایم بریم سراغ زیبایی ایرانی در دنیای کادرهای بسته و از خوشگلی های تصویری با هم حرف بزنیم که الحق بحث مهمیه و با این رشد دنیای مجازی دغدغه خوشعکس بودن هم درست باعث خوشقیافه بودن و زیبایی تو دنیای واقعی اونم خود اهمیت پیدا کرده و حتی گاهی یک دغدغه ملی تبدیل شده. بله امروز میریم سراغ زیبایی در قاب تصویر، زیبایی به زور فتوشاپ و تکنیک‌های عکاسی پس همین ابتدای برنامه یک سلام مخصوص داریم خدمت همه اونایی که بلدن چجوری با یک کم بازی با نور و زاویه عکس و یه خوردن فتوشاپ از خودشون الهه زیبایی بسازن و در دنیای مجازی قلب‌ها رو تسخیر کنن البته سلامی هم عرض میکنیم خدمت اون که به این نکات واقف نیستن ترجیم میدن به جای عکس خودشون تو شبکه های اجتماعی از عکس های طبیعت استفاده کنن همینجا از این دسته دوم خواهش میکنیم که این برنامه رو با دقت گوش بدن نکات کوزگری زیادی درش هست برای خوش خوشعکستر شدن بله ماقا این نختخوا ماغ به سرات دی یک روز بعد از اجه شدن برجام و لغ تحریم ها آیتاطله آممولی لاریجانی درست وقتی همه مشغول شیرینی خوردن و تبریک گفتن و خوشحالی کردن بودن اون رگ دوااپسانش زد بیرون و گربر و دم هجل کشت و خاب به قدرت های غربی. همچین همچین اولتوماتومی صادر کردند آمریکایی ها و اروپایی ها یعنی کشور های پنج بر علاوه یک دوباره مسیر فریبکاری و حین ورزی رو طی نکنند و اون تحریم هایی رو که برداشتند از جهت هستهی دوباره به بحانه واهی دیگری بخان تحمیل به کشور کنند این به هیچ وجهی برای کشور و برای مسئولین کشور قابل قبول نیست بله این یعنی چی حالا عرض میکنم یعنی چون جمهوری اسلامی بچه خوبی بوده و از برنامه های اتمی خودش دست برداشته و خطری برای جامعه جهانی محسوب نمیشه پس دیگه توی اه... کشور خودش هر کاری اشقش کشید میتونه بکنه و جامعه جهانی و کشورهای غربی هم اگه بخوان باز این بعضهای مسخری نمیدونم حقوق بشری و این چیزها رو مطرح کنن و از تحریم به عنوان ابزار فشار بخوان استفاده کنن که حال جمهوری اسلامی کمتر مردم خودش رو چپ و راست کنه کلن برجام بی برجام و معظم لهم میزنه زیر همه چی اینه که خانم آقای این دختر خانم در دوره پسابر برجام و لغو تحریم ها و گسترش روابط دوستانه جمهوری اسلامی با غرب ضمن حفظ روحیه و خوشحالی بابت تحریم نبودن یه مقدار دست به اثار آبرین که دیگه ما موندیم و معظمله معظمله مونده با ما حالا فعلا تو قدم اول از این اصلاح طلب که میخواستن برن مجلس یه نسخی کشیدن خدا قدم بعدیشونو بخیر کنه <تصفيق> الو فرشید جان الان که دارم برات میذارم سرمای بسیار بدی آخیش با یه باد بسیار بد. و دما دقیقا منفی 22 درجه است به به میگم اینقدر سرمای پراگ نانات باید قاط رو سرمو رو بدونی شکوفه هستم از کانادا به به ببین مرسی ممنونم شکوفه جان ببین اصلا شما که تماس میگیرین اینجوری میگین اصلا روحیه میدین به ما به خدا تا رو خدا زمین بزنیم برامون از سرمایه مغز سوز شهراتون بیشتر بگین به خدا ما توی پرایگ دلمون و همین چیزا خوشه به قول فرهاد عزیز میگه با اینا زمستونو سر میکنم با اینا خستگیمو در میکنم دیگه نمیدونم دیگه ممشکلم نمیدونم چیه یعنی از دیدن آدمهای سرما تر از خودمون ما اینجا تو پرایگ به یک حس رضایت و گرمایه درونی میرسیم یعنی الان گفتیم منفی 22 درجه اصلا خیالم راحت شد یس آخی... oh, yes. آقا این شمال چرا یه تابستون شد؟ ما دیروز البته پیش بینی کرده بودیم گرم میشه گفتیم که اما نه اینکه دیگه رسما تابستونی بشه هوا خیلی گرم شده آقا امروز ساری با 32 درجه از بندر عباس و میرجاوه و جزیره ابو موسا و هر جای دیگه ایرانم گرمتر بود که این اگه نشانه های ظهور نباشه احتمالاً نشانه ال نینو معروفه دیگه آقا یعنی چی آتا بعضی هم میگن اثر تحریم تحریمات که هوای شمال مثل هوای ریو دو جانیرو شده که البته ما باور نمی‌کنیم برحال هرچی که هست امیدواریم شمالی عزیز هم که دیروز هم گفتم از این هوای مطبوع تاب در وسط زمستان نهایت لذت رو برده باشن و ببرن البته امیدواریم توی دریای طوفانی امروز شمال حوث آبتنی به سرشون نزده باشه رشید منافی خواهشان غلطه باد بگی خواهش می‌کنم یا لطفاً بدم که دو مسی کردن شینیون نیست اونجوری که من می‌دونم موها رو جمع کردن پشت سر شینیونه چه خشن حالا باش خیلی خوب ما که گفتیم، گفتیمم دیروز گفتیم ما تازه تاتی تاتی پا به دنیای اصلاحات زنانه و آرایشگری و اینا گذاشتیم دیگه ما فهمی کنم شینیون پشت می‌بندن اینطوری بعد دو مسی و هم تو مایه‌های شینیون آلا زار بالاتر زار پوینت تر دیگه چه می‌دونم دیگه انتظاراتی داری شما از ما خواهشن یه جوری برخورد نکنین آدم دیگه زده بشه نه سمت این مسائل زیبایی زنانه خیلی ممنونم از تماستون ولی خواهشان یک کم مهربون تر تذکر بریم زهره ترک شدیم با همه دیگه یه بچه البته میگن 27 درجه بوده حالا ساری منظورمه ساری رو گفتم 27 درجه بوده ساعت 4-5 بعد از او بعد. خب ظهرش هم 32 درجه بوده دیگه نه واقعا گرم اصلا تو زمستون عجیبا غریبا همینجور داریم شاخ در میاریم ما خانم ها آقایون همون جوری که ما داده داشتیم شاخ در می آوردیم از این گرمای ساری دیروز توی خبرها باز یه چیز دیگه خوندیم که از دیروز باز همین جوری که شاخ در آوردیم مای ما تنمون همجوری سیخ شد همجوری مونده ظاهراً توی کشور دوست و برادر پاکستان پسر 15 ساله ای کوم یه روحانی تو مایای حاجی آقا اندل مؤمنین خودمون نشسته بوده بعد این روحانی وسط صحبت‌ها و خطابه و از وینا یه جا از هزار میپرسه که مگه کسی هم هست پیامبر اسلام رو دوست نداشته باشه سوال میکنه این پسرم توی اون شلوغی‌ها اینا سوال اشتباه متوجه میشه و احتمالاً فکر میکنه که حاجی آقا پرسیدن که کی پیامبر اسلام رو دوست داره برای همین دستشو بلند میکنه میگه آقا ما آقا ما آقا ما بعد که متوجه اشتباهش میشه چیکار میکنه؟ آی گفتید این اینجاست که ما شاخ در آوردیم محیتنمم حمجی سیخ شده مونده. چیکار میکنه؟ عسقایی میکنه؟ نه. ببینید میگه شرمنده آج آقا درست نشدید سوالو؟ میزنه تو سر خودش. خیر، غلطه. میره هفتاد رکعت نماز استغفار میخونه خیر، بازم غلط. میگم آقا موهامو میگم دیروز حمجی سیخ شده وایساده ببین چی بوده. این نوجوان 15 ساله انقدر از این اشتباهش ناراحت میشه، انقدر ناراحت میشه. میره خونه، هم تا میرسه خونه میره تو آشپزخونه، چاقو ور داره دست خودشو در, در برابر چون این سوالی، چون در برابر چنین سوالی بلند شده بوده، دست خودشو با چاقو قطع میکنه آقا، خانوم. فکر کن به خدا حالمات دیروزم بعد آخه من اینا چی میزنن، چی فکر میکنن؟ اون وقت شما توقع دارین کسی که به خودش رحم نمیکنه به دیگران رحم کنه؟ هیچی چی دیگه. داستان دیگه از نکنید، نکنیم نکنن. یا گذشته آقا ول کنی. ملت از رد دادن کلا <تصفيق> تو میزن کم کم دارم دیون ما بریم سراغ برنامه 969 رادیو پسوردا و امروز سشنبه 29 دیمای 1394 میریم سراغ زیبایی در قاب تصویر زیبایی به زور فوتوشاپ و تکنیکای عکاسی ایانیه شماره 969 بدانید و آگاه باشید که این اینستاگرام و فیسبوک و بقیه شبکه‌های مجازی را برای این نگذاشتند که شما 24 ساعت زندگی خودتان را در حال گرفتن عکس با فیگورهای مختلف و آرایش‌های عجق و وجق برای انتشار در آنها باشید بلکه این شبکه‌های اجتماعی را برای آن گذاشتند که به ایچی با بی خیال آقا بی خیال خوبه دیگه برای همه گذاشتن عکس بگیرید برای عکس گذاشتن و اینا بنابراین راحت باشید و تا می توانید عکس های قشنگ قشنگ بندازید و بگذارید فقط یادتان باشد آنها رو برای دسترسی عموم هم آزاد بنمایید تا همه ما از حال برندگان باشیم جمشین جمشین همه جمشین, جمشین آه همینه آه خوبه درسته اوکیه آها خوب شد خب شو. شو. امضا خودشان همین الان در یک ستایل و فیگور جدید عکس اندازنده های رادیو راژیو هست و دا دا دا دا دا, دا, دا, دا, دا, دا. این بعضیا کلا بدعکسن یعنی خودشون بنده های خدا بدقیافه نیستن ها ولی تو ها میشه داغون میوفتن دیگه علت بدعکس بودن بعضی از آدم ها رو خب تا روز دانشمندان تونستن کشف کنن و این بدعکس بودن و اینکه چطور یکی ممکنه خودش خوب باشه ولی عکسش مثل شیر برنج وارفته باشه هنوز مثل یک راز سر به مهر در دنیای علم باقی مونده در دنیای علم عکاسی البته سوای این پدیده بدعکس بودن یه د خیلی خیلی خیلی خیلی زیادتری هم هستن که فکر میکنن بد اکسن. یعنی عین اینجا را معمولاً معمولا چون زیاد جلو آین نمیرن برای همین تصوری که از خودشون دارن با واقعیتی که وجود داره زمین تااسمون تفاوت داره و به همین دلیل معمولا از دیدن چهره خودشون توی عکس ها جا میخورند و فکر میکنن که بد عکسند. اما اگر شما هم از دسته همین بد ها یا خود بد عکس ها هستین غصه نخوری، غصه نداره که حتی بد عکس ترین هم یک زاویگی طلایی دارند. گاهی از اون زاویه از خودشون عکس می‌گیرن زیبا و جذاب جلوه می‌کنن توی عکس‌ها حالا برای بعضیا این زاویه سرخ بعضیا نیم روخه بعضیا بعضی سرخ از پایینه، بعضیا تمام روخ خب از بالا است نمی‌دونم بالاخره نمی‌دونم دیگه این زاویه طلایی برای همه وجود داره فقط بعد وقت بذارین پیداش کنین این مهمه یعنی همین الان اگه فکر بعد عکسی وقت بذار و پیداش کن زاویه طلایی رو مشکل آدمای بعد عکس اینه که اون زاویه یا خیلی زاویه سختیه گویا باید مثلا برای رسیدن به اون زاویه بود 180 درجه گردن رو بچرخونن یا چه میدونم این زاویه خیلی باازه یعنی بازه محدودی داره و مثلا چه میدونم مثل دیش ماهواره یک دو درجه این اینورور بشه تاثیرشون خراب میشه خیلی سخته میدونی خیلی زاویه کمیه اینم به هر حال مشکل بدعکساس دیگه با کمی ممارسات صرف وقت و حوصله میتونین بهش غلبه کنین امیدواریم حالا این دفعه توی مهمونی که فک و فامیل و اینا دست جمع میخوان عکس بگیرن برید شما یه گوشه وایسین اصلا شما میخواد عکس یه گوشه وایسین به فیگورا دقت کنین ببینین اینا کشف کردن این زاویه تلایی خودشون رو یعنی می‌بینی هر کی کله رو یه طرفی چرخونده یکی صورتو گرفته رو به سقف زیرچشی خمار داره نگاه می‌کنه به مثلا دوربین اون یکی نیم رخ وایساده این یه چششو داده پایین یه چششو داده بالا یکی دیگه کلر رو مثل فلامینگو کج کرده پایین خلاص یه وضعیه دیگه اینا همه به خاطر هم اون زاویه تلایی است که الان گفتم خدمتتون حالا شما هم برین زاویه رو پیدا کنیم. یکی از اون آدم هستم که دماغم رو عمل نکردم به نظرم زیبایی پدیده درومیه و راحتم مشکلی ندارم با و دماغ صورت منه دیگه به شما ها کار داره؟ خیلی هم از این استایل هم خوشم میاد کاتیا هستم رو از رشت اخی کاتیا بوده هم که استایلش خیلی با خ... استایل خودش حال میکرد بهترین استایلو داری شما بهترین دم همه بر بچه های رشتم که گرم که با دماغشون راحتن و با استایل خودشون حال میکنن دمتون گرم تی دماغ میسر تی بالا میسر تی دماغ میسر همین دیگه تی جان قربان لذت داشتنی آدم آقا بزرگه مثلا تو مثلا حامد نیکپی پی همین لوت دارید شما بازم هست آلپاچینو پاچینو تام کروز رادپیت و برای این میگین اسم مییارین بعد اینا رو هم بگین دیگه دیگه به هر حال کار یکیه دستمون بر میاد قول شما من چیزی ندارم بگم دیگه یه بر بچه‌ها توی اینستاگرام گفته که من ساندویچی دارم موقع برنامه‌تون اوج کاسبی مونایی میشه ده قسمت ده قسمت از اولین برنامه یعنی سال 89 دو تو فایل زیب بزن تلگرام مرسی بله چشم خدا برکت بده به ساندویچی تون شما دیگه چیز دیگه نمیخواین غ... غ... چی بودین اسمتون غلام غلامی حسین غلام چیز دیگه نمیخواین سس بزنین براتون دونونه نونه بپیچم میخورین یا میبرین توقعاتی دارن ملت آقا نوش نوش کاسبید براه فارشی جان کامران هستم از امریکا میخواستم بگم که پسرایی که آرایش میکنن طبعا کارشون مردود و رد شده است اه. ولی یادمون نره که تا زمانی که خواستگاه واسه این کارها وجود نداشته باشه کسی این کارو نمیکنه. بله. یه بخشی از مشکل سمت دخترای عزیزمون هست. موهایی بله. که اینجور آدمها رو میپسندن اونجایی که تشویق میکنن، دوست دختراشون یا کسایی که توی جامعه باشون در ارتباط هستن، حتماً پسرها فیدبک میگیرن که این کارا رو هر روز دارن بیشتر میکنن. بله خیلی که شما سخنرانی و فتوا دادیون اینا انجوری هم البته خب قطعی اینطوری بخوای صحبت کنی خب خیلی درست نیست ولی حالا به خودشون راضی هم، پارتنرشون راضیه دیگه یه میگن ما راضی، او راضی گور بابای ناراضی اینجوریه دیگه به کسی هم خب صدمه ای نمیزنن ما نمیدونم به چه مناسبت بعد بگیم این کار غلط است این کار غلط نه خیر بلکه از قدیم الایام چون آرایش گردان برای مردم مثلا بعد میدونستان و اینها شاید بعضی هم چیز ذهنیاتی دارن خیلی ممنونم از تماس شما و اینکه نظر شخصی خودت رو گفتی پاس فردا رادیو فردا.com ایمیل ماست شماره های ماست فیسبوک در فیسبوک گوگل پلاس اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برامون کامنت بذارید در کانال تلگرامی ما میتونید join بشید همینطور اپلیکیشن رادیو پاس رو میتونید دانلود بکنید iOS iOS اونایی که دارن روی آیفون یا آیپد میتونید داشته باشید صدای ما رو بشنوید صدای خودتون رو به گوش ما برسونید و رادیو رو به صورت زنده از طریق همون اپلیکیشن میتونید بشنوید تلفن های ما دو سف چار بیست بیست و دو یازده و چهار سه و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن دو سف چار سد و بیست نور بشین نمیتونم می توطقد بیارا دست تو میلارز دلمم می تسه نمیتونم بی تو دووم بیارم رااخ تو رفته توی جنم, توی جنم. تو مبال آرو جوون تو یهو یاد ندیدم دیونه این خونه زندونه وقتی که چشم تو گریونه عشق من رو ندون لو نمیدونم است تو یهو یاد ندیدی دیونه این خونه زندونه 7 سال دیگه یه مورخی بخواد تاریخ دوره ماها رو بنویسه و بگه اصلا استایل عکاسی از چهره و هیکل و پک و پوز آدم ها به دو دوره قبل و بعد از پیدایش فیسبوک و اینستاگرام و توییتر و کلاً شبکه‌های مجازی تبدیل میشه اصلا نمیشه بهش خورده گرفت یعنی الان شما میرین اینستاگرام خانومارو نگاه می‌کنین صبح عکس گذاشته با موهای بلوند، چشای آبی، لبای صور، خاصن یه من دیگه ادامه ندم دیگه کن بعد شب میرین می‌بینی عکس دیگه گذاشته، یه دختر دیگه، بهش میگه ای دختره کی عکس گذاشتی؟ میگه واه خدا مرگم بده خب معلومه میگه بابا اون یکی دیگه بودا این یکی دیگه استا این که الان گذاشی ماش مشکی چشاش قهوه‌ای چون واسه برنزه است میگه ای بابا خب رو عوض کردم اون مال صبح بود این مال شبه یعنی این مواقع آیا شما در جواب ایشون نباید بگی استایل شب و روز و نصف روز و نصف شب و وسط روز و بعد از کل تو حلقم نه جون من دیگه کار دیگه دست شما برمیاد آیا نمیاد دیگه نمیاد به خدا نمیاد پیش اومده رفتیم اجلس ختممه ازادار مشکی پوش تیریپا خسته نراحت بعد میبینی رفیقمون کچل بار مشکی پوشی در اینک آفتابی هم زده هی hey, اینوری فیگور میگیره hey, اینجوری عکس میدازه هی hey, اونوری فیگور میگیره عکس میدازه بشت میگی بابا داداش مرگ من یواش مجلس ختمه نکنین کارا رو فیلم کنی چی میگه فهم میگه به جون دایی من تا حالا تو اینستام یه عکس با تیپ مشکی تو مجلس ختم نداشتم راستی اون دیس خرمه رو بز بغلم میخوام تو عکس با با کت شلوارم سته جون من بز الان شما میخواید دست این رفیقمون عصبانی بشی خب نباید بشی و چیکار کنی برو موبایل دستش بگی عکس ازش بنداز زودتر راحتش کن دیگه مجلس ختم زشته راحتش کن بگی عکس رو سته خب خرمه با کت شلوارش کشت خودشو دوستای منم یه کارایی میکنن بعضی وقتاها سیمین امروز اس با چشم گریون اومد بود خونه ای ما که پسره اونی نبود که من عاشقش شده بودم گفتم چی میگی تو کدوم پسره؟ گفت همونی که عکسای خوشگل از خودش میذاشت تو فیسبوک همونی که گفتم عاشق قد و بالاش شدم قرار بود امروز با هم بریم کافه ببینیم همو برا اولین بار گفتم خب بعدش چی شد گفت هیچی دیگه اصلا شبیه نبود یه گفته بودم قدش از من یه هوا بلندتر کوتاه‌تر بود گفتم مهم نیست اگه اخلاقش خوب باشه که گفت همون قیافش تو ها همیشه مهربون بود اصلا انگار نورانی بود ولی خودشه که دیدم یه جور خشنی بود گفتم خب تو فیسبوکش چیزی از خودش می نمی‌نویش که تو عاشق فکرش بشی جای اینکه عاشق زیبایی اشتباهیش بشی گفت نه بابا طرف عکاس همش عکس میذاره. یا از خودش یا از این ور گفتم خب تو با پدیده‌ای به نام نورپردازی و زاویه دوربین و اینا آشنایی داری گفت نه گفتم با فوتوشاب چی؟ گفت آره همونی که عکس و دستگاری میکنن باهاش گفتم آره تقریبا یعنی این طرف بلد بوده چطوری عکس خوشگل بگیره یا جوری کنه که زیبا به نظر برسه حالا کاش اقلیم بهش میگفتی عکس واسه پروفایل فیسبوکت بگیره این عکس علانت خیلی زایست یه آبی با دوستایی تو فیسبوک قالب بازی تو فیسبوک. فیسبوک که همه خیلی خیلی جان سوال کرده در مورد لوازم آرایشی به نظر من بزرگترین مصرف کننده های لوازم ماراشین خانوما هستن، خانمای ایرانی نمونهش همین همسر خود من که من قافل بشم مداد ابروهای من و همه رو برداشت <تصفح> چش <تصفح> وقته لن زنددی ها میذاره رو تموم کرده یه هفته است من کرنپود ندارم خلاصص خیلی خیلی وضع بدی هستن من واقعا نگران این وضعیت استفاده از لوازم ماراشین تواس خانوما مرسی میرم از تورن تو اماان از دست این خانوما نکنیم نکنید کنند. خب آقا دست خوب نیست واقعاً. نه واقعاً خوب دست نزنیم به وسال آراشی هم دیگه. دست نزنیم. فریدورز غریب سلام. سلام سلام بر همگی فاشیجان. فری توی دنیای ورزشکارا این زیبایی و این مسائل چقدر اهمیت داره؟ زیبایی فیزیکی تن و بدن و اندام هرچی جان جز لاین فکر ورزش واسه آماده بودن اما زیبایی چهره تو ورزشکارا ها چه از کنم؟ باید با ذرقبین پیدا کرد ولی یه خبر خارجی بامزه بود تو این زمینه که زیباترین و زشتنین فوتبالیست های انگلیسی از این منچستر یونایتد. هستن یعنی بودن و هستن دیوید بکام و وین رونی البته بکام که حال خیلی وقت کفشاشو دیگه آویزون کرده اما رونی هنوز بازی میکنه آره؟ یاره درسته وین هنوز بازی میکنه فرشی تو سال 2016 هستیم که سال اولمپیکه یه گزارش پخش شد از سیما که فرنگ کارای ایرانی که تو اولمپیک 2012 المپیک قبلی تو لندن گل کاشتن و تلا دلو کردن یلا داشتن از شرایط موجود اگه موافقی گوش بدیم حرفا رو بشنویم ما اینجا چیزی به اسم چیز المپیکی ندیدیم و هوای المپیکی ندیدیم بهتره که ما حرف نزنم حقوق ورزشکاران هم که اصلا معلوم نیست کی میدن و اصلا نمیشه روش حساب کرد دو سه سالی که گذشته همش ما داریم از جیب خودمون هزینه میکنیم احساس میکنیم که اصلا المپیکی پیش روی نداریم ما بله ولی بورس کیا بودن اینایی که صحبت کردند؟ فرسی جان به ترتیب صدا سعید عبدالی بود محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بود قاسم رضایی آخری ام امید نروزی بود با این شرایط انتظار کست مدال اونم تلا ازشون دارند داریم دارند اینو از تو قلب گرفتم از تو این آخر رو حالا ایشالا یه دوزار از اواید پسا تحریم و به این ورزشگاره عزیزم بدن تا <تص> از این نوبت راحت برن بقول معروف وزنه یا کندی رو غبارو بگیرن فریبوز آه، آه، آه، رو بگیرن دیگه. فریبرز پرونده ورزش هفته رو به من بریم تا شنبه دیگه روز آخره. یه خبر بود امروز از اه، اه، کلی احالیه ورزش که فرشی تو این چند مدت گذشته کاندید شده بودن تو انتخابات برای انتخابات مجلس بله. فقط آرش میر اسماعیلی قهرمان سابق جودو تایید شده از حوزه خرم آباد باقی رد شدن، رد صلاحیت شدن از جمله جواد خیابانی گزارشگر فوتبال و دو تا سردار سردار عزیز الله محمدی رئیس اتحادیه فوتبال که یکی از فرماندهان جبهه جنگ بوده و سردار خودمون محمد رویانیان که کلی خرساز بوده البته آقای رویانیان گفته خودم انصراف دادم عجب خب دیگه ظاهرا تو شورای نگهبان همه رو رد صلاحیت کردن دیگه مگه اینکه خلافش ثابت بشه درست میشه ان ممنونم ازت فریبرز عزیز با خداحافظی می‌کنیم تا هفته آینده شنبه تا شمبه خدا نگه داره همینی hey, My size ain't smaller, stalling Catch a glimpse, our clothes be falling Her neighbor's calling, bawling. All this noise is so appalling They must believe we're brawling Headboard going to lull and Ah, that's Moist ha, ha ha به سلام ضمن اظهار تجب از اینکه آنوزی چی نشده مکدونالد برای افتتاح شبه در ایران اعلام آمادگی کرده پیش سه شب شب را با مروری بر سرخط مهمترین خبرها امروز و امشب آغاز مینماوی <متصفيق> نظری جانکری درباره این که عربستان اگر دنبال بمب اتم باشد تجربه ایران را تکرار خواهد کرد و سوال کارشناسان که از نظر حقوق بشر عربستان بدتر از ایرانه ولی رئیس یک کمیته حقوق بشر اونو چی میگین شما؟ ابراز عقیده رئیس جمهور ایران در مورد برجام با این مضمون که ما تنها نمونه استثنایی در دنیا هستیم و نظر ناظران که آخه مقام معظم رهبری ما هم خودشون یه پای استثنایی هستن که ما رو به اینجا رسوندن؟ و رایزنی روحانی و لاریجانی با شررا نگهبان در مورد رد صلیت ها و پیش فعالان عرضه رد صلاحیت که آخرشم آقا جنتی سی نفر تایید تایید صلاحی تا صلاحیت تایید صلیت چه در میکنه پ نفر میگه برید خوش باشی مهمترین عنوین خبری ساختبت گذشته را شامل می شدند اینک مشروب خبرها با همکاوم بولیبل. با سلام بنا به های رسیده امروز فرصت سه روزه اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده ی انتخابات مجلس به پایان رسید این داوطلبان باید برای ثبت اعتراض خودشان به ورزشگاه تختی در شرق تهران مراجعه کرده مراحل رسمی و اداری ثبت اعتراض را طی کردند در همین رابطه یکی از کارشناسان ضمن تشکر از ابتکار شورای نگهبان در انتخاب یک مکان ورزشی دور افتاده در شرق تهران برای این کار از مسئولین درخواست کرد برای ادوار آینده افراد رد صلاحیت شده را وادار نمایند چند دور دور زمین فوتبال دویده پنجاه عدد دراز و بارفیکس زده و در نهایت با انداختن موج با هم رقابت نمایند تا با نظر و لطف فوقه و حقوقدانان شورای نگهبان چند نفر از آنان با ارفاق برای شرکت در انتخابات تایید صلاحیت شوند پایان مشروع اخبار همانطور که در خبرها آمده بود دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در حسابی نظری یادآور شده بود که در 9 اول سال جاری 270 و هزار و دیش ماهواره در تهران جمع‌آوری شده است و همین مناسبت همکار گرامی هم خبرنگار وایدی غیرمرکزی خبر به یکی از این مراسم ماهواره جمع‌کنی رفته تا از آن گزارشی تهیه کند همکار گرامی اگه صدای بنده دارید بفرمایید که الان کجا هستید شما الو الو همکار گرامی با... الو, الو همکار گرامی به بنده الان خب روی پشتفون هستم دیگه با... باستی چی رفتی روی پشتفون بیا پایین بچه می با... رفتی یعنی همکار با... گرامی چی شد رفتی روی پشتفون همکار گرامی من به همراه یکی از واحد های پدافند نیروی انتظامی به پشتفا بام یکی از وارد های مستونی نفوز کردیم و الان برادرها در حال جمع کردن دیش هستن همکار گرم همکار گرم این چقدر دیش هست بگه روی اون پشت بوم همکار گرم این پشت بومه هنقدر دیش روشه که ما اول فکر کردیم اومدیم روی پشت بومه صدا و سیما و چه کردیم مطمئن شدیم دیدیم نه اینجا برز مسکونی همکار گرم حجب خب به همکار گرم این از نیروهای انتظامی که همراهشون هستی بگو برامون بله به خیلی بچه های با هستن و در جمعوری ها تکنیک های خیلی متفاوتی به کار میبرن همکار گرامی یعنی همکاری گرامی یعنی چی تکنیک متفاوت آه. یعنی چی یعنی دیش جمع کردن هم تکنیک دارم مگه آخه همکار گرامی اختیار داری اصلا من تکنیک های رو دیدم اینجا که اصلا تا حالا تو میدونه جنگ هم ندیده بودم عجیبه بگو ببینیم مثلا چی تکنیک هایی که مید می ا با تیش مشه گازانبوری با دیشا برخورد میکنن و پیش میاد سایه خدای نکرده دیشی جان نمونه مدلای دیگه البته هست تل گوچی شاخ بوزی یه چی بود برادر تخم قویی و اینا راهی شورای نظامیه که برای حمله به بیش استفاده میشن کارا گرا عجب جا چی ها علی بله؟ چی میگی دست گلشون بله بله؟ درب نکن الو چی میگی چی با منی با چی می ماد برم ظاهرا یکیش نیروهای برادران در برخورد با یک دیش مجروح شده من برم کجاش خالی نمونه دیگه آخ آخ اومده آخ آخ. اومده. بله خسته نباشید همه گی با تشکر از توجه شما تا شب دیگر و دیشی دیگر و برنامه‌ای دیگر و همکار گرامی دیگر خدا نگهدار من علیکم ولا آرایش به واقع که یکی از مهمه ترین مسائله که باید عزیزان به قد بکننه نه که در کتاب ما درباره این بحث آرایش و اینجور مسائل اومده که انما آرایش و فی بطونی اما کم غیرتی بازی غیرتیبازی اکم ولا تتو چشم و چار اکم ذرب اکم جور هکم کف اینجا با عصبانیت می‌فرماید که، مگر شما وقتی از شکم مادرتان بیرون می‌آید، از این غرطی بازی بازی‌ها بلد بودید که چش مچارتان را تاتوم می‌کنید، و فکر می‌کنید ما نمی‌فهمم. از این فکر نکنید که جوری می‌زنیم، می‌تون که کف کنید. بالا، بیاید. قبل دهران خیلی عصبانی بوده و برای من دور اصلی نکه این همه و رفتن مؤمنات و گرایشات مؤمنین با سرکله خودشان نتانها جای از نیست که. حرام آرایشیه ما, ما یک تفل معصوم نصفی داریم که اسمش را نصف المومنین گذاشته ایم یک بار ختمت ما رسید و از ما کسب اجازه کرد که براد دماغش را عمل بخونه البته باید اینجا عرض کنیم که واقع دماغ عین بیچاره از دماغ مرحوم تنسی تا بزرگ هم بزرگتره و میتوان عمل او را واجب دماغی است. اما با توجه به این که روحانیت نمیتونه ننگه جور اعمال ننگین را تحمل بکنه و دامن خیش را دماغی بکنه ما برای این که این بچه ادب بشه در این لحظه روی دو پای خیش بلند شده یک دووار و جمع را در فضا به عمل آورده جغفا توی صورت وی فرود آمدیم که خب بحمدالله برادران اور خیلی زود تشریفا آوردند و ایشان را مستقیم به اتاق عمل بردن با الله عمل شکستگی دماغ ایشان خیلی خوب انجام شد خب الان دیگه اون دماغ عظیم نصفه شده مثل خودش دیگه ولی متاسفانه هنوز هم با همین نصفه باقی مانده میشه برای نصفه آب گوش درست کرد اینه که ما به عزیزان وسیعت میکنیم اگر خواستن دماغشان را عمل بکنند اول یک بلای چیزی سرش بیارن بعد عمل بکنن تا اینطور دیگه مکروهیت آن برطرف بشن بله زیبای اینا تمام و سلام علیکم و درود فراون با خاجی عاشقان که دماغ داره اندازه اینا آیا از بدعکس بودن خود به سطوح آمده اید؟ آیا از گذاشتن عکس گلدان و پنجره و کفتر چاهی به جای عکس پروفایل در شبکه های اجتماعی خسته شده اید؟ آیا در آلبوم های اکس خانوادگی همیشه خودتان را که با دهان باز و غبغب و چشم های بسته افتاده اید از اکس قیچی غیچی کرده اید؟ دیگر بس است. ما در آتلیه فوق تخصصی عکاسی زاویه طلایی، زاویه طلایی شما را پیدا کرده و شما را با زاویه جذابتان آشنا میکنیم. من مشکلم این بود که همیشه بعد عکس بودم و توی همه عکس زشت و خپل می‌افتادم تا اینکه به آتلیه عکاسی زاویه تلایی مراجعه کردم و متخصصین این مرکز منو خوشبختانه با زاویه تلایی خودم آشنا کردن و من متوجه شدم که همیشه باید دوربینو با زاویه 85 درجه کنار قوزک پام بذارم و از پایین به بالا از خودم عکس بگیرم و اینجوری هم قدم توی عکس خیلی بلند و کشیده جلوه می‌کنه و هم از زیر صورتم خیلی فیس به نظر میرسه از وقتی اکس های جدیدم گذاشتم روی فیسبوک 7000 زارت و پیدا کردم در صورت که قبلا فقط دخترم من پالوم میکرد به شما هم توصیه میکنم به این آتولیه مراجعه کنید با آتولیه یک اکس زاویه تلایی بر مشکل بد اکسی خود غلبه کرده و همواره در عکس ها بدرخشید اکاسی زاویه تلایی نگرانی ما از آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد کامران ملکموتی سلام سلام فرسی جان سلام همگی بزن بریم که پرونده خبرهای هنری این هفته رو ببندی فرش از فردا یه فیلم تو حوزه سینمای کودک بالاخره بعد از مدت ها اکران میشه اسم فیلم وروجک هاست بریم بخش از صدای فیلم رو بشنبیم فعلا بعد من میگم که به چی به چیه و کی به کی و اینجور هست وروجک ها رو بشنبیم صدای من میگم باهاش مذاکره کنیم من میگم جلوش واسی <تصفح> مذاکره بهت در راهه اسم گروش هم گروه هشت من نمیشم اگه میتاسی کی دیگه از بابیش شو تو میگیری باهاش دسته باش میکنی میاریش تو این خونه مثلا دست کیو میگیرم محمودی همون که دائم زنگ میزد. که حس کی نگاه به اون میکنه ایول پس بالا لیستش رو بذاریم بعدا یا ممنون شد درسا رو قطعشین بله بختچه صدای فیلم وروجکار شنیدیم عوامل فیلم کیا هستن کارگردان فیلم فرزاد اجدری سیما تیرانداز علی رضا خمسه و طوفان مهدادی هم بازیگره اصلی فیلم هستند بسیار خب. از موسیقی چه خبر کامرا؟ یه خبر مهم موسیقی برات بگم امروز مهمترین خبر درگذشت گلن فری نبازنده و خواننده گروه معروف ایگلز فری در سن 67 سالگی به علت بیماری کلیت هاد و سینه پهلو تو نیویورک از دنیا رفت یک از معروف ترین کارهای فری ترانه هتل کالیفرنیا است که میذارم خیلی ازش خاطره دارن بسیار خوب ما میریم به اتفاق بخشایی از همین هتل کالیفرنیا رو شنویم و با تو هم خدافظی می کنیم تا هفته آینده شنبه تا شنبه خودمون میام پشتبازو های برمزدی ها یه برند فرانسویه تازه اومده اسم شریقه چرا سیکس پک خودتا نمیگی؟ پهلومانوارم که آب کریشه ای تو اون دکتره خوب بود؟ آره دکتر مارتیک خیلی خوش سلیقه تازه قول داده دفعه دیگه برام کول بذاره یه چند سانتی هم بلندترم کنه آده سه مطب بشو بده واسه افتادگی پلکام یه سر برام سراغه آره تو ازم گرفت؟ سلیمون ایمون اون جوره اچیاب دو ده بار بیشتر کرد <تصفح> منو اینجا نگو دیگه دافرونه همون اوم سلی باشه لفل کنین نه رو دو فو به چیس <تصفح> <تصفح> دو به آرائی جیسی که طبیعی یا پلاستیکی به نظره این عروسک ما همچنی دماغ قلمی بعید میدونم طبیعی باشه خیلی کن دماغو بارا تو کار چشا ای جون چه چشاشای تنگ دلبری چشاش که عمرن طبیعی باشه لنزه بابا اصلا شک اگه طبیعی نبود من پیش همون مارتی گوشا مولاقی برای تمه باشه قبوله قبوله برو برو جون سوشی بردم خدمتون نه هانی من سوشی دوست ندارم آخه دیگه چی دوست نداری پیشی <تصفح> بگم نه نمیخواد بگی <تصفح> چه آبی قشنگی داری چشهای خودتو یا لنزه مرسی همه به میگم چشم د... چشهای خودمه <تصفح> منم همینو میگم ماله <تصفح> بچه اینجای یه تایلند با اون چشای بادونید <تصفح> نه آخه میدونی؟ تازه چربی تصویل کنم چه چهشان ببین این اینا هنوز پفش نقابیده ببینم بازو تو چه تطویب با حالی داری آره اجده های سرو استراکوسه تو مجموع جزائر کمور نماد و عشقه میگم شنا بلدی نه آخه من از آق میترسم چه تو مگه؟ نگران نباش با این بادکنک اگه بخوایم غرق نمیشی بی بیه چی میگی با اومو ایمش کردن بده جیانتو رنگ موام طبیعیه مثل چشای آره خوده ها <تصفيق> حالا نمیخواد خالی ببندی وایه چقدر دان شدم بریم یه چیزی بزنیم برخصیم <تصفح> آره بیشی جون خوب گفتیم یه چیزی دارم می بهش میان اورنجه ون میزنی میری بهشت نوت به نوت موسیقی رو میتونی ببینی تا خود ساب میرخصونده <تصفح> <تصفح> نه نه اینطوری نه منظورم یه نوشیدنی لایت بود یه چیزی مثل رد بود <تصفح> بیخیال شیشی جون لوس نشویت نمیاد یه اینو برا بالا آخه من باشه حالا امتحان میکنم یا بیا این نوشیدنی هم گوش بخور. این چی چخبوین؟ اونن چی چی بود؟ وای من چرا اینجوری میشم؟ آخ چه توند بود. وای. اوچ. یه ولی درخشم شیش ای یا خدا چی شدین؟ چی شده؟ دم دماغت کو؟ وای نه خدایا هی بیایی دکتره با خوب بخیش کنه ها وای ها به رو که ای ای کجا رفتی؟ ای چی بود دیگه بابا داغو شکرت خدا بیخ گوشمون رد شد میگن تو از نزدیک ندیدی باور نکنه همینه دیگه بابی بابی ای بابا بهادر آن چیه بابا <تصفح> چی شده <تصفح> دیدی چی دختره بگه ات بود <تصفح> <تصفح> در لنگش داره دماغش افتاد کف دستش. آره خدا، آلمیگم سولی اینو واقعی بود که دیدیم یا اثر این اورنج هونه بود؟ بابا فکر کنم واقعی بود. اینو گل کو سولی جو شرطو باختی. دیدی گفتم دختر پلاستیکه. گی گوشتو اولی عمل میکنی یا؟ گمشو بابا. حالا های بودیم یه چیزی گفتیم. نه به خودم نمیشه. ببین اصا فردا صبح خودم به دکتر مارتیک زنگ می‌زنم برات وقت چه تک بشی تو با گوشای اولاقی چونم ببکم بابی حال نداری برگشت برگشت مثل عزیزم پیشی خوش دم آقا تو دوباره کار بذاشتی آه بچه برو برو که ببینم اینچ بیری ده چی شو؟ این مگه اون نبود نمیدونم خودش بودم ما والا این همه هم شد شبیه هم شدم نمیدونم بیبریم بیبریم برخشیم آنشون موسیقی بیش و از اوخبر بر حکایت میکند از مودی تازه روایت میکند دازموند پیدا نمودندی رواد جردن و فرمانی میدان کا اهل این مدل به حیوان بستند زادمیت هم پشیمان گشتند بین حیوانات هم خردوستند ظاهرا در از آدم پوستند دست جراحان دهندی گوش را در نظر دارند یک خرگوش را. گوش گوشه چون می دلبری می کنند این گوش خود گوش خرید بابا. یادم آید بی ناب مولوی برد لب باشد به هر روز و شوید هر کسی کدوماند از اصل خیش باز جوید روزگار و اصلی. اصل خیش قرورونت فرشی جون برابای. شعر از اسماعیل تقویی بود بنده هم شهرام هستم از نوبانیات سریغه ممنون از شهرام و همه هنرمنده همه هنرمنده های هنرمنده ما دمتون داریم روزنامه روزنامه فعاله ده روزنامه روژ فعاله روزنامه افتادی است به نقل از دادستان کل کشور؟ سه مهره کلیدی حمله به سفارت عربستان دست شدند آه. اصلا از اول معلوم بود که حمله کننده ها کلیدی و دستشون با روحانی توی یک کاس هست این کارا رو برنامه کرده که دل و رو خراب کنه دیگه پیتر امروز روزنامه خراسان افضایش نرخ جریمه های رانندگی فعلا اعمال نمی شود خب خدا رو شکنگا پول های بلوکی شده داره می رسه حالا تا چند وقت برای کسی بود هاشون سراغ مردم نمیاد. آن خدا روش. فرصت امشبمون هم تموم شد و آخرین برنامه زنده این هفته هم به پایان رسید چیستو یسریوی میگه به همان اندازه خداحافظی نکردیم که سلام دادیم خداحافظی های همیشه اول میشد در کل کلماتی که به هم گفته بودیم شبتون خوش آسمون دنیا نکرد سر آسمون ما بگرد گفته بودم بی تو می میرم ولی این بار نه گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه هرچه گوی دوستت دارم اجاز تکرار نیست خوب نمیگیرم گیرم به این تکرار تو تیوار نه تا که پابندت شوم از خیش میرانی مرا دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه قصد رفتن کردهی تا باز هم گویم به ما دیگر میکنم خواهش ولی اصرار نه گه مرا بز بیزنی گه باز پیشم میکشی آنجه دستت دادم نامش از افسار نه